اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الیف لام را کتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبیر به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الفلام را این است که آیاتش استحکام یافته سپس تشریح شده و از نزد خداوند حکیم و آگاه نازل گردیده است اَلَّا تَعْبُدُوا الا الله ایننی لکم منه و بشیر من این است که جز الله را نپرستید من از سوی او برای شما بیم دهنده و بشارت دهنده ام و انستغفرو ربکم ثم توبوا الیه یمدعکم و مَّتَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِي كُلُّ ذِي فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَإِنَّ گار خيش آمرزش بطلبيد سپس به سوی او بازگردید تا شما را تا مدت معینی از مواهب زندگی این جهان به خوبی بخمند سازد و به هر صاحب فضیلتی به مقدار فضیلتش ببخشد و اگر از این فرمان روی گردان شوید من بر شما از عذاب روز بزرگی بیناکم الى الله مرجعكم و هو على كل شيء قدیر برانید بازگشت شما به سوی الله است و او بر هر چیز تواناست الا انهم یثنون صدورهم لیستخفو منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ان له علم بذاات الصدور اوغاخ آنها سرها را به هم نزدیک ساخته و سینهاشان را در کنار هم قرار میدهند تا خود و سخنان خیش را از او پیام بر پنهان دارند. آگاه باشید. آنگاه که آنها لباسهایشان را به خود می و خیش را در آن پنهان می کنند، خداوند می داند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازد. چرا که او از اسرار درون سینه ها آگاه است. وما من دابة فی الأرض إلا على الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل فی كتاب مبین هیچ ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را میداند همه اینها در کتاب آشکاری ثبت است. و الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ, ليقولن الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ او کسیست که آسمان هاب و زمین را در شش روز آفرید و عرش حکومت او بر آب قرار داشت به خاطر این آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک عملتان بهتر است و اگر به آنها بگویی شما بعد از مرگ برانگیخته میشوید، مسلمان کافران میگویند این سحری آشکار است ولئن أخّرنا عنهم العذاب إلى ها آمت معدوده لا يقولون ليقولن ما یحبسه ألا يوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون و اگر مجازات را تا زمان محدودی از آنها به تأخیر اندازیم از روی استهزا میگویند چه چیز مانع آن شده است آگاه باشید آن روز که عذاب به سراغشان آید از آنها بازگردانده نخواهد شد و هیچ قدرتی مانع آن نخواهد بود و آنچه را مسخره کردند دامانشان را میگیرد ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه انه كفور و اگر از جانب خویش نعمتی به انسان بچشانیم سپس آن را از او بگیریم بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مسته ليقولن لَيَقُولَنْ لَذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ و اگر بعد از شدت و که به او رسیده نعمتهایی به او به میگوید مشکلات از من برطرف شد و دیگر باز نخواهد گشت و قرق شادی و قفلت و فخر فروشی می شوند الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير مگر آنها که در سایه ایمان راستین سبر و استقامت ورزیدند و کارهای شایسته انجام دادند که برای آنها آمرزش و عجر بزرگی است کتاری کن بعد ما یوحا ایلیک و ضائقن بی صدر که <زقی> شاید يقولوا لولا أنزل عليك انز أو والله على ابلاغ بعض آیاتی را که به تو وه میشود به خاطر عدم پذیرش آنها ترک کنی و به تأخیر اندازی و سینهت از این جهت تنگ و ناراحت شود که میگویند چرا گنجی بر او نازل نشده و یا چرا فرشتهای ای همراه او نیامده است ابلاغ کن و نگران و ناراحت مباش چرا که تو فقط بین دهنده ای و خداوند نگاه او ناظر بر همه چیز است و به حساب آنان می‌رسد. هم یقولون افترا. قل فاتو بعشر سور مثله مفتریات و, و دعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. آیا میگویند او به دروغ این قرآن را به خدا نسبت داده و ساختگی است؟ بگو اگر راست میگویید شما هم ده سوره ساختگی همانند این قرآن بیاورید و تمام کسانی را که میتوانید غیر از خدا برای این کار دعوت کنید فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ و اگر آنها دعوت شما را نپذیرفتند، بدانید قرآن تنها با علم الهی نازل شده و هیچ معبودی جز او نیست آیا با این حال تسلیم می شوید؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها زینتها نوفی إليهم اعمالهم فیها وهم فيها فیها و, فيها و فيها لا يبخسون کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند نتیجه اعمالشان را در همین دنیا به طور کامل به آنها میدهیم. و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد اولئیک الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولی آنها در آخرت جز آتش سهمی نخواهند داشت و آنچه را در دنیا برای غیر خدا انجام دادند برباد می روید و آنچه را عمل می کردند باطل و بی اثر می شود افمن کان علی بیند من ربی و شاهد منه ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه انه الحق من ربك ولكن ولكن اكثر الناس لا يؤمنون آیا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خیش دارد و به دنبال آن شاهدی از سوی او باشد و پیش از آن کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود گواهی بر آن می دهد همچون کسیست که چنین نباشد آنها حق طلبان و حقیقت جویان به او که دارای این ویژگی هاست ایمان می آورند و هر کس از گروه های مختلف به او کافر شود آتش و عدگاه اوست پس تردیدی در آن نداشته باش که آن حق است از پروردگارت. ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند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 چه کسی ستم است از کسانی که بر خدا افتراع میبندند؟ آنان روز رستاخیز بر پروردگارشان گارشان عرضه میشوند در حالی که شاهدان پیام بران و فرشتگان میگویند؟ اینها همانها هستند که به پروردگارشان دروغ بستند ای لعنت خدا بر ظالمان باد الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا وهم بالآخرتهم كافرون همانها که مردم را از راه خدا باز میدارند و راه حق را کج و معوج نشان میدهند و به سرای آخرت کافرند آنها هیچگاه توانایی فرار در زمین را ندارند و جز خدا پشتی بانهایی از عذاب خدا برای آنها مزاعف خواهد بود چرا که هم خودشان گمراه بودند و هم دیگران را گمراه ساختند آنها هرگز توانایی شنیدن حق را نداشتند و حقیقت را نمیدیدند اولائك الذين قصروا انفسهم وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا آنان کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست دادهاند و تمام معبودهای دروغین از نظرشان گم شدند لا جرم ان به ناچار آنها در سرای آخرت از همه زیان کار ترند این الذین آمنوا و الصالحات و اخبتوا و اخبتوا الى ربهم اولائک اولائک اصحاب الجنه هم خالدون کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و در برابر پروردگارشان خضوع و خشوع کردند آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند مثل الفریقین که ال اعمى و هل یستویان مثلا افلا تذکرون حال این دو گروه مؤمنان و منکران حال نابینا و کر و بینا و شنواست آیا این دو همانند یک آیا پند نمی گیرید ارسلنا نوحا الی قومه اننی لكم نذیر مبین ما نوح را به سوی قومش فرستادیم نخستین بار به آنها گفت من برای شما بین دهنده ای آشکارم الا تعبدون الا الله انني اخاف عذاب يوم عليم. جز الله خدای یگانه یکتارا نپرستید زیرا بر شما از عذاب روز دردناکی میترسم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك الا الذين هم اراذلون بالي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل ظنكم بل ظنكم كاذبين اشراف كافر قومش در پاسخ او گفتند ما تو را جز بشری همچون خودمان نمیبینیم نمی بینیم و کسانی را که از تو پیروی کرده اند جز گروهی ارازل ساد له مشاهده نمی کنیم و برای شما فضیلتی نسبت به خود نمی بینیم بلکه شما را دروغگو تصور می کنیم قال یا قوم ارائیتم ان كنت على بینت من ربی وآتاني رحمه من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون نوح گفت ای قوم من به من خبر دهید اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم و از نزد خودش رحمتی به من داده باشد و بر شما مخفی مانده آیا باز هم رسالت مرا انکار می آیا ما می شما را به پذیرش این دلیل روشن مجبور سازیم با اینکه شما کراحت دارید؟ و یا قوم لا اسألكم علیه مالا این اجریه الا الله و ما انا بطارد الذين امنوا ان لهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم ولكنني آراكم قوما تجهلون اي قوم من به خاطر این دعوت اجر و پاداشی از شما نمی اجر من تنها بر خداست و من آنها را که ایمان آورده اند به خاطر شما از خود ترد نمی کنم چرا که آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد اگر آنها را از خود برانم در دادگاه قیامت خصم من خواهند بود ولی شما را قوم جاهلی می بینم ویا قوم من ینصرنی من الله طردتهم افلا تذكرون ای قوم من چه کسی مرا در برابر مجازات خدا یاری میدهد اگر آنان را ترد کنم آیا اندیشه نمی کنید؟ ولا أَقُولُ لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لين يهديهم لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ مَن هرگز به شما نمیگویم خزائن الهی نزد من است و غیب هم نمیدانم و نمیگویم من فرشته ام و نیز نمیگویم کسانی که در نظر شما خار می آیند خداوند خیری به آنها نخواهد داد خدا از دل آنان آگاهتر است با این حال اگر آنها را برانم در این صورت از ستمکاران خواهم بود قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا فأتینا بما تعیدنا این کنت من الصادقین گفتند ای نوح با ما جر رو بحث کردی و زیاد هم جر رو بحث کردی بس است اکنون اگر راست میگویی، آنچرا آنچه از عذاب الهی به ما وعده میدهی بیاور طال انما ما به الله ان شاء وما انتم وما انتم بمعجزين نوح گفت اگر خدا اراده کند خواهد آورد و شما قدرت فرار از آن را نخواهید داشت ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون اما چه سود كه هرگاه خدا بخواهد شما را به گناهانتان گمراه سازد و من بخواهم شما را اندرز دهم اندرز من سودی به حالتان نخواهد داشت او پروردگار شماست و به سوی او بازگشت داده میشوید ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرام و انا بریئ من ما تجرمون آیا مشرکان میگویند او محمد این سخنان را به دروغ به خدا نسبت داده است؟ بگو اگر من اینها را از پیش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم گناهش بر عهده من است ولی من از گناهان شما بیزارم و اوحی نوح ان انه لن یؤمن من قوم که الا من قد اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَ اِسْمِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ به نوح وحی شد که جز آنها که تا کنون ایمان آوردهاند دیگر هیچ کس از قوم تو ایمان نخواهد آورد. پس از کارهایی که میکردند کردند مباش وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ و اکنون در حضور ما و طبق وحی ما کشتی بساز و درباره آنها که ستم کردند شفاعت مکن که همه آنها غرق شدنی هستند ويصنع الفلك وكل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون او مشغول ساختن کشتی بود و هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او می گذشتند او را مسخره میکردند ولی نوح گفت اگر ما را مسخره میکنید ما نیز شما را همین گونه مسخره خواهیم کرد فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خار کننده به سراغش خواهد آمد و مجازات جافدان بر او وارد خواهد شد حتی اذا جاء امرنا و فاردت النور قل نحمل فیها قل نحمل فيها من كل زوجین اثنین و اهلك الا الا من سبق علیه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل این وضع همچنان ادامه یافت تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید و تنور جوشیدن گرفت به نوح گفتیم از هر جفتی از حیوانات از نر و ماده یک زوج در آن کشتی حمل کن همچنین خاندانت را بر آن سوار کن مگر آنها که قبلا وعده حلاک آنان داده شده همسر و یکی از فرزندانت و همچنین مؤمنان را اما جز عده کمی همراه او ایمان نیاوردند وقال ركبو فيها بسم الله مجرىها ومرساها إن ربي لغفور رحم. به نام خدا بر آن سوار شوید و هنگام حرکت و توقف کشتی یاد او کنید که پروردگارم آمر زنده و مهربان است. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادا ونادا نوح لبناه و کان فی معزني يا بنيارکم معنا يا معنا ولا تقم مع الكافرين. كشتي را از میان همچون کوه ها حرکت میداد در این هنگام نوح فرزندش را که در گوش ای بود صدا زد پسرم همراه ما سوار شو و با کافران مباش قال سآوی الى جمال یوم من أمر الله الا مرحیم وحال بینهما الموج فکان من, من المغرقین گفت به زودی به کوه پناه میبرم که مرا از آب حفظ میکند نوح گفت امروز هیچ نگهداری در برابر فرمان خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند در این هنگام موج در میان آن دو شد و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت و قیل و الماء و الأمر الامر و على علالجودی و بعدا للقوم الظالمین و گفته شد ای زمین آبت را فرو بر و ای آسمان خدداری کن و آب فرو نشست و کار پایان یافت و کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت و در این هنگام گفته شد دور باد قوم ستمگر از سعادت و نجات و رحمت خدا و نادانو حربه فقال ربی ان بنی من اهلی و ان وعدک الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ نوح به پرورد گزارش عرض کرد پروردگارا پسرم از خاندان من است و وعده تو در مورد نجات خاندانم حق است و تو از همه حکم کنندگان برتری آل یانوح این ه لس عمل صالح به نوح او از اهل تو نیست او عمل غیر صالحی بردن ناشایسته است، پس آن چرا از آن آگاه نیستی؟ از من مخواه من به تو اندرز میدهم که از جاهلان نباشی. قال رب اینی اعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بی علم و إلا وإلا تغفر لي و ترحمني مین الخاسرین ارجارد من به تو پناه میبرم که از تو چیزی بخواهم که از آن آگاهی ندارم و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی از زیانکاران خواهم بود قیل یا نوحه سلام من و و برکات علیک و علا امم من من, من معک و امم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب به نوح گفته شد ای نوح با سلامت و برکاتی از ناهیه ما بر تو و بر تمام عمتهایی که با تو اند فرو و امتهایی نیز هستند که ما آنها را از نعمتها بهرمند خواهیم ساخت سپس عذاب دردناکی از سوی ما به آنها میرسد چرا که این نعمتها را کفران میکنند کنند تلک من انبائی الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين اینها از خبرهای غیب است که به تو ای پیام بر وحی میکنیم نه تو و نه قومت اینها را پیش از این نمیدانستید بنابر این صبر استقامت کن که عاقبت از آن پرهیزگاران است و الى عاد اخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون ما به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم به آنها گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست شما فقط تهمت میزنید و بوتها را شریک او میخانید یا قوم لا اسألكم علیه اجرا این اجری الا علیلذی فطرنی افلا تعقلون ای قوم من من از شما برای این رسالت پاداشی نمی طلبم. پاداش من تنها بر کسی است که مرا آفریده است آیا نمی فهمید و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم و و یزدکم قوة قوتكم ولا تتوله مجرمین و ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید سپس به سوی او بازگردید تا باران آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و نیروی بر نیرویتان بیفزاید و گنهکارانه روی از حق بر نشابید قالوا يا يهود ما جئتنا و وما نحن ب آلهتنا وما نحن ب تاركي عن قولك وما نحن لك بمؤمنين گفتند اي هود تو دلیل روشنی برای ما نیاوردی و ما خدایان خود را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد و ما اصلاً به تو ایمان نمی آوریم این نقولو الا اعتراک بعض آلیهتنا بسوق قال اشهد الله و اشهدو و من ما درباره تو فقط میگوییم بعضی از خدایان ما به تو زیان رسانده و عقلت را ربوده اند هود گفت من خدا را به شهادت می طلبم شما نیز گواه باشید که من بیزارم از آنچه شریک خدا قرار می دهید. می‌دونه فکیدونی از آنکه غیر او می پرستید حال که چنین است همگی برای من نقشه بکشید و مرا مهلت ندهید اما بدانید کاری از دست شما ساخته نیست انني توكلت على الله ربي و ربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم من بر الله که پروردگار من شماست توکل کرده ام هیچ جن بنده نیست مگر اینکه او بر آن تسلط دارد اما سلطه ای با عدالت چرا که پروردگار من بر راه راست است و این تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به إليكم. و یستخلف ربی قوما غیرکم و لا تغرونهو شیئا این ربی على کل شیئ حفیق پس اگر روی برگردانید من رسالتی را که مأمور بودم به شما رسندم و پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما می کند و شما کمترین ضرری به او نمیرسانید پروردگارم حافظ و نگاهبان هر چیز است ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت مننا و من عذاب غلیظ و هنگامی که فرمان ما فرارسید، رسید، حود و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود نجات دادیم، و آنها را از عذاب شدید رهایی بخشیدیم. و تلک عاد جحدو بی آیات ربیم و عصا و اعصا رسوله و او امر کل جبال عنید و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و پیامبران او را معصیت نمودند و از فرمان هر ستمگر دشمن حق پیروی کردند و اتبعو فی هذه الدنیا لعنتا ويوم یوم القیامة الائن عادا کفر ربهم الابعدا لعاد قوم هود. آنان در این دنیا و روز قیامت لعنت و نام ننگینی بدنبال دارند بدانید عاد نسبت به پروردگارشان کفر ورزیدند دور باد عاد قوم هود از رحمت خدا و خیر و سعادت و الی ثمود اخرهم صالحا قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ربی قریب مجيب و بسوی قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست. اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت از او آمرزش بطلبید. سپس به سوی او بازگردید که پروردگارم به بندگان خود نزدیک و اجابت کننده خواسته های آنهاست.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 ای صالح تو پیش از این مایه امید ما بودی؟ آیا ما را از پرستش آن پدرانمان پدران نحی می پرستیدند نهی می کنی؟ در حالی که ما در مورد آنچه به سوی آن دعوتمان میکنی در شک و تردید هستیم؟ قال یا قوم ارائیتم ان کنتو على بینت من ربی و منه رحمتا فمن ینصرنی من الله این عصیده فما تزیدوننی غیر تخسیر گفت ای قوم به من خبر بدهید اگر من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم و رحمتی از جانب خود به من داده باشد می توانم از ابلاغ رسالت او سرپیچی کنم؟ اگر من نافرمانی او کنم چه کسی می تواند مرا در برابر وی یاری دهد؟ پس سخنان شما جز اطمینان به زیانکار بودنتان چیزی بر من نمی افزادد و یا قوم الله لكم آیه قذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب ای قوم من این ناقه خداوند است که برای شما نشانه است بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود هیچ گونه آزاری به آن نرسانید که عذاب خدا شما را خواهد گرفت. تعقرها فقالتم ادعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غیر مكذوب اما آنها آن ناقه را از پای درآوردند و صالح به آنها گفت مهلت شما تمام شد سه روز در خانه هایتان گردید و بعد از آن عذاب الهی فرا خواهد رسید این وعده است که دروغ نخواهد بود فلما جاء امرنا نجینا نجینا صالحا و الذین آمنوا معه برحمت مننا برحمت من و من خزی یوم این ربک هو القوی العزیز و هنگامی که فرمان مجازات ما فرارسید صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خود از آن عذاب و از رسوایی آن روز رهایی بخشیدیم چرا که پروردگارت قوی و شکست ناپذیر است و, اخذ ظلموا في و کسانی را که ستم کرده بودند سیحه آسمانی فرو گرفت و در خانه‌هایشان به روی افتادند و مردند که لم فیها آنچنان که گویی هرگز ساکن آن دیار نبودند بدانید قوم سمود پروردگارشان را انکار کردند دور باد قوم سمود از رحمت پروردگار وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيثَ فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند گفتند سلام او نیز گفت سلام و طولی نکشید که گوساله بریانی برای آنها آورد. فلما راا ایدیهم لا تصل الیه ناکرهم واوجس منهم خیفه قالوا لا تخف ان ارسلنا الى قوم لوط اما هنگامی که دید دست آنها به آن نمیرسد و از آن نمیخورند کار آنها را زشت شمرد و در دل احساس ترس نمود به او گفتند نترس ما به سوی قوم لوت فرستاده شده ایم و امرأته فضحكت فبشرناها فبشرناها بی و من وراء اسحاق یعقوب و همسرش ایستاده بود از خوشحالی خندید پس او را به اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادیم. قالت یا وایلت و انا عجوز و هذا بعلي شيخا ان هذا لا عجیب عجيب گفت ای بای بر من آیا من فرزند می آورم در حالی که پیر زنم و این شوهرم پیرمردی است این راستی چیز عجیبی است قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد گفتند آیا از فرمان خدا تعجب می‌کنی این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است چرا که او ستوده و است. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشره یجادلنا في قوم لوط هنگامی که ترس ابراهیم فرو نشست و بشارت به او رسید در باره قوم لوت با ما مجادله می کرد. لحليم چرا که ابراهیم بردبار و دلسوز و بازگشت کننده به سوی خدا بود یا ابراهیم اعرض عن هذا إنه قد جاء امر ربك و اینهم عذاب غیر مردود. ای ابراهیم از این درخواست صرف نظر کن که فرمان پروردگارت فرا رسیده و به طور قطع عذاب الهی به سراغ آنها می آید و برگشت ندارد و لما جاءت رسولنا لوطن سیع بهم وضاق بهم ذرعا و قال, و قال هذا یوم عصیب و هنگامی که رسولان ما فرشتگان عذاب به سراغ لوت آمدند از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت امروز روز سختیست زیرا آنها را نشناخت و ترسید قوم تبهکار مزاهم آنها شوند و قومه یهرعون إليه و من قبل کانو و من قبل کانو یعملون السیئات قال يا قوم هؤلاء رلكم الله ولا منكم رجل قوم او به قصد مزاحمت میهمانان به سرعت به سراغ او آمدند و قبلا کارهای بد انجام میدادند گفت ای قوم من اینها دختران منند برای شما پاکیز ترند با آنها ازدواج کنید و از زشتکاری چشم بپوشید از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید آیا در میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟ قالوا لقد علمت ما لنا بناتك من حق لتعلم ما گفتند تو که میدانی ما تمایلی به دختران تو نداریم و خوب میدانی ما چه میخواهیم او آوی او آوی گفت افسوس ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا تکیه گاه و پشتیبان محکمی در اختیار من بود آنگاه میدانستم با شما زشت سیرتان ددمنش چه چکنم. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك انّه مصیبها ما أصابهم إنّما موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب فرشتگان عذاب گفتند ای لوت ما فرستادگان پروردگار تو ایم آنها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد در دل شب خانواد را از این شهر حرکت ده و هیچی که از شما پشت فرش را نگاه نکند مگر همسرت که او هم به همان بلایی که آنها گرفتار می گرفتار خواهد شد موعد آنها صبح است آیا صبح نزدیک نیست؟ فلن جاء امرنا جعلنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا و امطرنا علیها حجارت من سجیل مندود و هنگامی که فرمان ما فرا رسید آن شهر و دیار را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ متراکم بر روی هم بر آنها نازل نمودیم موسوما و سنگ هایی که نزد پروردگارت نشاندار دار بود و آن از سایر ستمگران دور نیست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 و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که جز او معبود دیگری برای شما نیست پیمان و وزن را کم نکنید و دست به کم فروشی نزنید من همکنون شما را در نعمت میبینم ولی از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناکم و یا قوم امف المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاء هم ولا تعثوا في الارض مفسدين و ای قوم من پیمانه و وزن را با عدالت تمام دهید و بر اشیاء و اجناس مردم عیب نگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین به فساد نکوشید بقیت الله خیر لهم این كنتم مؤمنین و ما انعليكم آنچه خداوند برای شما باقی گذارده از سرمایه های حلال برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید و من پاسدار شما و مأمور بر اجبارتان به ایمان نیستم قالو یا شعیب و صلاتک ما یعبد اهباؤنا او او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. إنك گفتند ای شعیب آیا نمازت به تو دستور می دهد که آنچرا پدرانمان من می پرستیدند ترک کنیم یا آنچرا می خواهیم در اموالمان انجام ندهیم تو که مرد بردبار و فهمیدهی هستی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 علیه توکلت و علیه گفت ای قوم به من بگویید هرگاه من دلیل آشکاری از پروردگارم داشته باشم و رزق و موهبت خوبی به من داده باشد آیا می توانم بر خلاف فرمان او رفتار کنم؟ من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز میدارم. خودم مرتکب شوم. من جز اصلاح تا آنجا که توانایی دارم نمیخواهم و توفیق من جز به خدا نیست بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی این یصیبکمت این یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما ما قوم نوط منکن ببعید و ای قوم من دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که شما به همون سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند گرفتار شوید و قوم لوط از شما چندان دور نیست واستغفروا ربکم ثم الیه این ربی رحیم و دود. از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوست دار بندگان تو بکار است قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا من ما تقول و انا و انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رهتوک لرجمناک و ما انت علينا بعزیز گفتند ای شعیب بسیاری از آنچه را میگویی ما نمیفهمیم و ما تو را در میان خود ضعیف مییابیم و اگر به خاطر قبیله کوچکت نبود تو را سنگسار میکردیم و تو در برابر ما قدرتی نداری قال یا قوم اربطی اعز من الله و و اتخذتموه و را این ربی بی ما تعملون محیط گفت ای قوم آیا قبیله کوچک من نزد شما عزیزتر از خداونده است؟ در حالی که فرمان او را پشت سر انداخته اید پروردگارم به آنچه انجام میدهید اهات دارد و آگاه است و يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و هو كاذب و رتقبوه إني معكم رقيب قوم هر کاری از دستتان ساخته است انجام دهید من هم کار خود را خواهم کرد و به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خار کننده به سراغش می آید و چه کسی دروغگوست؟ گوست شما انتظار بکشید من هم با شما در انتظارم نجینا شعیبا و الذین آمنوا معه برحمت منا و اقذت و الذین ظلموا الصیحت فاصبحوا في دیارهم جاثمین و هنگامی که فرمان ما فرا رسید شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمت خود نجات دادیم و آنها را که ستم کردند، صيحه آسمانی فرو گرفت و در دیار خود به رو افتادند و مردند. <تصفيق> <تصفيق> آنچنان که گویی هرگز از ساکنان آن دیار نبودند. دور باد مدیند و اهل آن از رحمت خدا همانگونه که قوم سمود دور شدند و لقد ما موسا را با آیات خود و دلیل آشکاری فرستادیم الى فرعون و ملئی فاتبعو فرعون و ما امر فرعون برشید به سوی فرعون و اطرافیانش اما آنها از فرمان فرعون پیروی کردند در حالی که فرمان فرعون مایه رشد و نجات نبود یقدم قومه یوم القیامت فاورده نار و بکسل ورد المورود روز قیامت او در پیشا پیش قومش خواهد بود و به جای چشمه های زلال بهشت آنها را وارد آتش می کند و چه بد آبش است آتش که بر آن وارد می شود و اتبعو فی ها و یوم القیامه بیسر رفد المرفود آنان در این جهان و روز قیامت لعنتی به دنبال دارند و چه بد است لعن و دوری از زحمت خدا که نصیب آنان می شود ذالک من انبای القرآن قصهو علیک منها حصید. این از اخبار شهرها و آبادی هاست که ما برای تو بازگو می کنیم که بعضی هنوز برپا هستند و بعضی درو شده اند و از میان رفته اند و ما انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التی یدعون من دون الله من شیئ لما جاء أَمْرُ رَبِّكَ وما زادوهم غَيْرَ تتبیب ما به آنها ستم نکردیم بلکه آنها خودشان برخیشتن ستم روا داشتند و هنگامی که فرمان مجازات الهی فرارسید رسید معبودانی را که غیر از خدا می‌خواندند آنها را یاری نکردند و جز بر هلاکت آنان نیافسودند وكذالك اخذ ربك اذا اخذ و این اخذمو علیم شدید و این چنین است مجازات پروردگار تو هنگامی که شهرها و آبادیهای ظالم را مجازات می کند. آری مجازات او دردناک و شدید است إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود نشان است برای کسی که از عذاب آخرت میترسد. همان روزی است که مردم در آن جمع میشوند و روزی که همه آن را مشاهده میکنند. و, و ما آن مجازات را جز تا زمان محدودی تأخیر نمیاندازیم. یوم یعتی لا تكلم نفس الا بی اذنه، فمنهم و سعید آن روز که قیامت و زمان مجازات فرارسد، هیچ کس جز به اجازه او سخن نمیگوید گروهی بدبختند و گروهی خوشبخت فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي الْنَّارِ لَهُمْ فِيهَا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اما آنها که بدبخت شدند در آتشند و برای آنان در آنجا زفیر و شهیق ناله های طولانی دم و بازدم است خالدین فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما یرید جاودان در آن خواهند ماند تا آسمان ها و زمین برپاست مگر آنچه پروردگارت بخواهد پروردگارت هر چرا را بخواهد انجام می‌دهد و اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود اما آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند جاودانه در بهشت خواهند ماند تا آسمانها و زمین برپاست مگر آنچه پروردگارت بخواهد بخششیست قطع نشودنی فلا ما یعبدون الا كما یعبد آباؤهم من قبل و این آلم و خومم نصیبهم غیر منقوس پس شک و تردیدی در باطل بودن معبودهایی که آنها میپرستند به خود راه مده آنها همانگونه این معبودها را پرستش میکنند که پدرانشان قبلا می پرستیدند و ما نصیب آنان را بی کم و کاست خواهیم داد ولقد لقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فیه ولولا لولا سبقت من ربك لقضی بینهم و اینهم لفی شک منه مریب ما به موسا کتاب آسمانی دادیم سپس در آن اختلاف شد و اگر فرمان قبلی خدا در زمینه آزمایش و اتمام حجت بر آنها نبود در میان آنان داوری میشد و آنها هنوز در شکند شکی آمیخته به بدگمانی و این کل لن لما یوفینهم ربک اعمالهم بما يعملون قبیر. و پروردگارت اعمال هر یک را بی کم و کاست به آنها خواهد داد او به آن عمل می کنند آگاه است فاستقیم که ما امرت و من تاب معك ولا لا تطغو اینهو تعملون بصیر همان گونه که فرمان یافته ای استقامت کن و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده اند باید استقامت کنند و تقیان نکنید که خداوند آنچه را انجام میدهید میبیند. ولا الذین ظلمو النار و ما و ما لكم من دون الله من ثم لا تنصرون و بر ظالمان تکیه ننمایید که موجب می شود آتش شما را فراگیرد و در آن حال هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت و یاری نمی شوید. و اقمی الصلاة طرفین نهار و من اللیل این الحسنات یذهبن السیعات ذلك ذکرال الذاکرین در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپادار چرا که حسنات، سیعات و آثار آنها را از بین میبرند. این تذکریست برای کسانی که اهل تذکرند و فا الله لا المحسنین و کن که خداوند پاداش نیکو کاران را زایع نخواهد کرد فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه قولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا إلا قليلا ممن من أنجینا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين چرا در قرون و اقوام قبل از شما دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد در زمین جلوگیری کنند مگر اندکی از آنها که نجاتشان دادیم و آنان که ستم میکردند از تنعم و کامجویی پیروی کردند و گناهکار بودند و نابود شدند و ما کان و, اهلها و نبود که پرورگارت آبادی ها را به ظلم و ستم نابود کند در حالی که اهلش در صدد اصلاح بوده باشند و, ربك ولا يزالون ولا يزالون مختلفين و اگر پروردگارت میخواست همه مردم را یک امت بدون هیچ گونه اختلاف قرار میداد ولی آنها هموار مختلفند الا مرحیم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا انجهنا من الجن والناس اجمعين مگر کسی را که پروردگارش رحم کند و برای همین پذیرش رحمت آنها را آفرید و فرمان پروردگارت قطعی شده که جهنم را از همه سرکشان و تاقیان جن و انس پرخواهم کرد و کلن نقص من به فؤادک و فی الحق و موعظت و ما از هر یک از سرگزشت های انبیا برای تو بازگو کردیم تا به وسیله آن قلبت را آرامش بخشیم و اراده ات قوی گردد و در این اخبار و سرگزشت برای تو حق و برای مؤمنان موعزه و تذکر آمده است. و قل للذين لا یؤمنون آنها که ایمان نمی آورند بگو هرچه در قدرت دارید انجام دهید ما هم انجام میدهیم. وانتظرون منتظرون. و انتظار بکشید ما هم منتظریم ولله غيب السماوات والأرض وإلیه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك عما تعملون و آگاهی از غیب و اسرار نهان آسمانها و زمین تنها از آن خداست و همه کارها به سوی او بازگردانده می شود پس او را پرستش کن و بر او توکل نما و پروردگارت از کارهایی که می کنید هرگز آفل نیست